دسته دوم گفتیم کشورهایی هستند که سیاست آمریکا و منقشه آمریکا مدارای با اونهاست یعنی چه مدارا؟ یعنی فعلا منافع مشترکی با اونها تعریف میکنه اونها رو در کنار خود قرار میدهد اما اون وقتی که فرصتی پیدا کرد خنجر رو از پشت به قلب اونها میکوبد و قلب آنها رو میداره اونا هم ملاحظه نمی کنه مثل که؟ مثل کشورهای اروپایی امروز کشورهای اروپایی وزیشون اینجوریست امریکا با اینها مدارا می کند. نه به معنای این که منافع اونا رو رعایت می کند. نه اونجایی که به توان لگت هم میزنه. از شخص اول کشور همپیمان خود جاسوسی اینترنتی هم میکنه جاسوسی از کنم که به وسیله تلفن همراه هم میکنه جاسوسی میکنن از زندگی خصوصی او جاسوسی میکنن عبای هم ندارن وقتی هم که کشف می شود میگن که بله ببخشید این کار شد دیگه چاره ای نبود انجام گرفت حاضر نیستن اذخای درست حسابی هم بکنن این هم دسته دوبومن. به نظر ما بنده فهمم از مسائل سیاست اینه که اروپاییها ها در یک خطای بزرگ راهبردی قرار دارن که خودشون رو در خدمت آمریکا قرار دادن منافع آمریکا را رعایت میکنن آمریکا منافع اونها را رعایت نمیکند و نخواهد کرد تا آخر هم همین جوره این هم دسته دوم